امپراتوری مغول، اثر مریحال، ترجمه نادر میرسعیدین، با صدای سعید مرزبانی، کاری از گروه فرهنگی آوانانه، با همکاری گروه انتشاراتی قغنوز، گفته. نیروی از شرق در صده سیزده همه میلادی ای در شرق مغولستان از گمنامی به مهمترین موقعیت در عمو به بین الملدی رسید این قبیله با اتحاد با سایر قبایل دشت پهناور محل سکونتشان سپاه نیرومندی را تحت رهبری مردی به نام چندگیزخان تشکیل داد در سال 1260 میلادی، فتوحات سپاه مغل به تشکیل امپراتوری مغل منجر شده بود. امپراتوری که بر دو سوم سرزمین پهناور اوراسیا شامل سراسر چین، مغولستان، ایران، عراق، افغانستان، کره کنونی و قسمتهایی از سیبری، روسیه، ترکیه، سوریه، پاکستان، هندوستان، ویتنام و کامبوج فعلی حاکمیت داشت چنگیز خان و جانشینان او با سپاهیانشان بیش از هر فرد دیگری در تاریخ جهان کشورهای مختلف را تسخیر کردند در سال 1280 میلادی تحت رهبری اخلاف چنگیز حکومت مغول از دریای مدیترانه تا دریای زرد امتداد یافت تنها امپراتوری بریتانیا در صدیه نوزده میلادی از لحاظ وسط و حدود از امپراتوری مغل در دوران اوجان فراتر بود. بعضی از اردوهای امپراتوری یعنی نواهی تحت حکومت خانهای زیر دستی که متی خان بزرگ بودند، سرانجام به صورت غلمروهای مستقل در آمدند و توانستند مدتی طولانی پس از سقوط امپراتوری باقی بمانند. اردوی زرین یا آلتون اردو در روسیه که در ابتدا تحت حکومت باتوخان نوه چنگیز بود تا سال 1502 میلادی موجودیت داشت. عقاب مغولان امپراتوری مغول را در هندوستان نیز برقرار کردند که تا صده هجده میلادی به طول انجامید. امپراتوری مغول در صده های پس از سقوط خود همچنان آثار خود را بر ساختارهای سیاسی اروپای شرقی، آسیا و خاورمیانه باقی گذاشت دگرگون شدن مغولان از غبیلهی کوچنشین به قدرتی جهانی کاملاً حیرتنگیز بود در پایان صده دوازده میلادی مغولان تنها یکی از بسیار قبایل کوچنشین و کوچک بودند که در دشت پهناور دائمان با یکدیگر دیگر نظامی کردند آنها گاه برای حمله یا دفاع از خود در برابر خطر با یکدیگر متحد می ولی اتحادشان هرگز استحکام نداشت اتحادها بارها تغییر می و اعتلافها هموار ناپایدار بودند پیش از شنگیز خال غبایل دشت پهناور برای تشکیل نیروی مستحکم یا پایدار هرگز وحدت نیافته بودند صلح مغالی بعید به نظر می که قبیله مغول یکی از بزرگترین رهبران جهان را پرورش دهد اما پسر یک رمدار احل دوردسترین حدود مغولستان توانه است غبایل متنازه دشت پهناور را به ملتی قدرتمند تبدیل کند و ارتشی به وجود آورد که تعلیم دیده و فنی ترین نیروی عصر خود بود چنگیز و اخلاف او با این ارتش امپراتوری را به وجود آوردند که بر سیر تاریخ تاثیر گذاشت چنگیز خان با گرد هم آوردن کشورهای مجزای متعدد تحت حکومت امپراتوری مغل جهانهای شرقی و غربی را با شیوه های بی سابقه به هم پیبند داد در سایه آرامش نسبی دوره صلح مغلی که به دلیل سلطه قدرتی واحد بر سرزمین های متعدد ایجاد شده بود سفر زمینی از اروپا به آسیا بسیار ایمنتر شد تحت حکومت مغل راهای تجاری شکوفا گردید و تبادل فرهنگی به واسطه گردش افراد کالاها و عقاید رواج یافت مغلان پزشکان و ستار شناسان ایرانی و همتایان چینی آنها را گرد هم آوردند و این همکاری به پیشرفت پزشکی و سایر علوم کمک کرد مبالغان و بازرگانان اروپایی به امپراتوری مغول سفر کردند و اطلاعات گرانبهایی درباره جغرافیا و فرهنگ آسیا با خود بردند اطلاعاتی که نسل جدیدی از کاشفان را به حرکت در آورد برای مثال کریستوف کلمب از آنچه مارکوپولو سیاح ونیزی در شرح امپراتوری مغول نوشته بود برای سفر با کشتی به سمت غرب الهام گرفت کلمب هنگامی که با دنیای جدید روبرو شد با این گمان که به مغولان خواهد رسید نامه‌های خطاب به خان خطای و رونوشتی از کتاب شرحی درباره جهان اثر پلو را که گوشه آن تا شده بود به همراه داشت. های فرهنگی فراهم آمده به واسطه صلح مغلی برای سراسر کره زمین نتایجی با اهمیت داشت. غبیله گمنامی از مردم دوردسترین حدود مغلستان امپراتوری وسیعی را پدید آوردند که بر جریان تاریخ تاثیر گذاشت مغولان که جنگجویان و رهبرانی با استعداد را گرد آوردند توانستن امپراتوری را به وجود آورند و اداره کنند که اثر خود را از لحاظ فرهنگی، فنی و سیاسی بر جهان باقی گذارند.